بخش دوم نغتنامه سنکایی ناکامی مقدمه گرچه شاید قلم رو ناکامی پهناور باشد از لگت شدن پا گرفته تا مرگ نابهنگام ولی در هسته هر ناکامی ساختاری اساسی نهافته است تزاد دخاستهی با واقعیتی بنیادی تضادها از همان دوران نوزادی شروع میشوند. در آن دوران کشف میکنیم که منابع رضایت ما خارج از کنترل خودمان هستند و جهان با امیال ما چندان مطابقتی ندارد. و با وجود این، به نظر سنکا اوج حکمت آن است که یاد بگیریم سرسختی و لجاجت جهان را با واکنشهایی مثل فوران خشم، احساس بدبختی، استراب، ترشرویی، خودبرحقبینی و بدگمانی وتر نسازیم در سراسر آثار سنکا یک فکر واحد تکرار می شود. وقتی میتوانیم به بهترین صورت این ناکامی ها را تحمل کنیم که خود را برای آنها آماده ساخته و درک کرده باشیم که بیشترین آسیب را از ناکامی هایی می بینیم که اصلا انتظارشان را ایم و نتوانستیم آنها را بفهمیم. فلسفه باید ما را با ابعاد حقیقی واقعیت سازگار و از آنها راضی کند و بنابراین مارا اگر نه از خود ناکامی حداقل از نمایش عواطف ویرانگر همراه با آن حفظ کند وظیفه فلسفه عبارت است از آماده کردن نرمترین فرود ممکن های ما بر روی دیوار ناپذیر واقعیت اول عصبانیت اوج برخورد کودکانه نمی توانیم دستگاه کنترل از راه دور یا کلیدها را پیدا کنیم. جاده بسته است. ظرفیت رستوران پر شده و بنابراین درها را به هم میکوبیم. گیاهان را از ریشه در میآوریم و فریاد میکشیم. کشیم به عقیده سنکا این کار نوعی جنون است. راهی سریعتر از این به جنون نمی رسد. بسیاری افراد خشمگین آرزو میکنند کودکانشان بمیرند. خودشان فقیر شوند خانهشان خراب شود و در عین حال انکار می که عصبانی هستند. درست همانطور که دیوانگان جنون خود را انکار می‌کنند. دشمنان نزدیکترین دوستانشان، قافل از قانون، آنها هر کاری را با زور انجام می دهند. بزرگترین بیماری آنها را مبتلا ساخته، بیماری که فراتر از تمام دیگر شرور است. دو در اوقات آرامتر ممکن است افراد خشمگین عذرخواهی کنند و توزیح دهند که تحت سلطه قدرتی قویتر از خود، یعنی قویتر از عقل خود بودند. آنها خودهای عقلانی آنها به دنبال اهانت نبودند و از فریاد زدن متاسفند. آنها کنترل نیروهای مرموزتر درون خود را از دست داده بودند. به این ترتیب افراد عصبانی به دیدگاه رایج درباره ذهن متوصل می‌شوند که مطابق آن قوه عاقله جایگاه خود حقیقی در معرض حمله گاه و بیگاه احساسات آتشی نیست که عقل نه قادر به تشخیص هاست و نه مسئول آنها شمرده می شود. این روایت تزاد آشکاری با دیدگاه سنک درباره ذهن دارد که مطابق آن عصبانیت نز فوران مهار ناشدنی حیجانات هیجانات بلکه از اشتباه اساسی و مهار شدنی قه تعقل ناشی می شود. عقل همواره بر نیست سمنکا میپذیرفت که اگر بر ما آب سرد بپاشند بدن ما هیچ راهی ندارد جز اینکه بلرزد اگر با انگشت به چشم‌های خود ضربه بزنیم مجبوریم پلکای خود را به هم بزنیم ولی عصبانیت به معقوله حرکات‌های جسمانی غیر ارادی تعلق ندارد عصبانیت تنها ممکن است با تکیه بر برخی عقاید اقلانی ظهور کند اگر ما فقط بتوانیم عقاید را تغییر دهیم گرایش خود به عصبانیت را تغییر خواهیم داد. 3. به نظر سنکا آنچه ما را عصبانی می کند برداشت های خوشبینانه خطرناکی درباره چگونگی جهان و دیگر افراد است. چهار، نگرش ما در این باره که چه چیزی به است اساسا تعین کننده میزان بد بودن واکنش ما به ناکامی است. ممکن است از اینکه باران می درمانده باشیم ولی آشنایی ما با باران به این معناست که غیرممکن است هرگز با عصبانیت به آن واکنش نشان دهیم چه چیزی ناکامی ها و های ما را کاهش می‌دهد اینکه بفهمیم از دنیا چه انتظاری می توانیم داشته باشیم و دریابیم که امید چه چیزی را داشتن امری به هنجار است هر وقت از دستیابی به امر مورد علاقه خود باز بمانیم عصبانیت ما را فرا نمیگیرد فقط هنگامی عصبانی می شویم که عقیده داشته باشیم لیاقت به دست آوردن آن چیز را داریم شدیدترین عصبانیت ما ناشی از رویدادهایی هستند که در که ما از اصول هستی را نقض می‌کنند می می‌توان انتظار داشت که فردی ثروتمند در روم باستان زندگی بسیار راحتی داشته است بسیاری از دوستان سنکا خانههایی بزرگ در پایتخت و ویلاهایی در نواحی ایالاقی داشتند این خانه ها حمام، باغ ستوندار، فواره، مزایک، دیوار دیوارنگاره و تخت طلاکاری شده داشتند. گروهی از بردگان کار آماده کردن قضا، مراقبت از کودکان و رسیدگی به باغ را انجام میدادند. با وجود این به نظر میرسید میزان عصبانیت افراد مرفه غیر عادی است. سنکا پس از اینکه دید دوستان ثروتمندش در اطراف او از نامالایمت های روزگار فریاد سر میدهند گفت رفاه بد اخلاقی را پرورش میدهد. سنکام مردی ثروتمند به نام ودیوس پولیا را می شناخت که دوست امپراتور آگوستوس بود و یک بار در یک مهمانی سینی جامهای کریستال از دست بردش زمین افتاده بود. ودیوس از صدای شکستن جام نفرت داشت و چنان عصبانی شد که دستور داد برده را به استخری پر از ماهی های دهانگرد بیاندازن تا او را بخورند. هفت. چون این چونین های هرگز تبعی ناپذیر نیستند. دلیل عصبانیت ویدیوز پدیو مشخص بود. زیرا او به دنیای عقیده داشت که در آن جامها در مهمانی ها نمی شکنند. وقتی نمی توانیم دستگاه کنترل از راه دور را پیدا کنیم فریاد میزنیم. زیرا به طور تلویحی به دنیای اعتقاد داریم که در آن دستگاه کنترل از راه دور گم نمیشوند. علت عصبانیت نوعی باور است. باوری که خواستگاههای های تقریبا خوشبینانه خندداری دارد. گرچه تأثیرات آن گریه آور است. این باور که در قرارداد زندگی چیزی به نام ناکامی نوشته نشده است. هشت باید بیشتر مراقب باشیم. سنکا سعی کرد ابعاد انتظارات ما را طوری تعدیل کند که وقتی این انتظارات نقش براب شد، با چنان صدای بلندی فریاد نزنیم. وقتی شام چند ای دیر شده است، چه لزومی دارد که با لگد میز را واشگون سازید یا لیوان ها را بشکنید یا خود را به ستونها بکوبید. وقتی صدای وزوز به گوش می رسد چرا باید ای که هیچکس چندان مشکلی در دور کردنش نداشته یا سگی که سر راه شما ظاهر می شود یا کلیدی که از دست مستخدمی بیده قط بر زمین افتاده شما را زبانی کند. وقتی چیزی سکوت اتاق غذاخوری را بر هم می زند، چرا وسط شام بروید و فقط به دلیل اینکه بردهها سرگرم صحبت هستند شلاق را بیاورید؟ ما باید خود را با نقایص ناگزیر هستی سازگار کنیم. آیا عجیب است که اشرار اعمال شریرانه انجام میدهند؟ یا غیرمنتظره است که دشمنتان به شما آسیب میزند؟ یا دوستتان شما را دلخور میکند یا پسرتان اشتباهی میکند یا مستخدم شما بدرفتاری رفتاری می میکند هرگاه از امیدواری دست برداریم دیگر عصبانی نخواهیم شد بنده دوم شک. هواپیمای شرکت هواپیمایی ملی سوئیس که 229 و و مسافر دارد طبق پرواز برنامه‌ریزی شده از نیویورک به ژنو پرواز میکند پنجاه دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه کندی در حالی که مهمانداران سرگرم حرکت دادن میزهای چرخدار خود در راهروی هواپیمای مکدانل داگلاس امدی آزده هستند، کاپیتان گزارش می دهد که در کابین خلبان دود هست. ده دقیقه بعد، هواپیما از رادار ناپدید می شود. این هواپیمای قولا که هر یک از بالهایش پنجه و دو متر طول دارد در آبهای آرام، ای از هالیفاکس نوا سقوط میکند و تمامی سرنشینانش کشته میشوند. گروه نجات از دشواری تعیین هویت افرادی صحبت میکند که همین چند ساعت قبل انسانهایی سرگرم زندگی و برنامه‌ریزی بودند. چمدانهای شناور در دریا پیدا میشوند. یک اگر ما به خطر فاجعه و بلای ناگهانی فکر نمیکنیم و بهای سادگی و خامی خود را میپردازیم، به این دلیل است که واقعیت دو ویژگی دارد که به نحوه بیرحمانهی گیج کننده هستند از یک طرف تداوم و قابل اطمینان بودن حیات در طول نسلها و از طرف دیگر بلایای غیرمنتظره. ما خود را میان دو امر دو پاره میابیم فراخانی معقول به اینکه تصور کنیم فردا کاملا شبیه امروز است و احتمال رویاروی روی با رویدادی هراسناک. که پس از آن دیگر هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. به دلیل وجود انگیزه های قوی در ما برای قفلت از این است که سنکا از الههی کمک گرفت. دو این الهه را میتوان پشت بسیاری از سکه های رومی دید که یک کرنوکوپیا در یک دست و سکانی در دست دیگر دارد. او زیباست و معمولا لباس نازکی پوشیده و لبخنده بر لب دارد. نام او فورتوناست، در اصل الهی باروری و فرزند ارشد جوکیتر بود و روز 25 مه جشنی به افتخارش برپا می و در سراسر ایتالیا معابدی به او اختصاص داشت که زنان عقیم و نازا و کشاورزان منتظر باران به آنجا می رفتند ولی به تدریج حوزه عمل او وسیع گردید و فورتونا به الهی پول، پیش رفت، عشق و تندرستی تبدیل شد کورنوکوپیا نماد قدرت او در ارزانی داشتن الطاف و انایات بود و سکان نمادی از قدرت شیطانیتر او در تغییر سرنوشت بود او میتوانست باران هدایا و برکات را جاری کند و سپس با سرعت هولناکی جهت سکان را تغییر دهد و با لبخندی ملایم مرگ ما به دلیل خفگی بر اثر تیغ ماهی یا ناپدید شدن ما بر اثر رانش زمین را تماشا کند سه، چون ما بیشترین آسیب را از چیزهایی میبینیم که انتظارشان را نداریم و چون باید انتظار همه چیز را داشته باشیم، هیچ کاری وجود ندارد که فورتونا جرأت انجامش را نداشته باشد. به عقیده سنکا باید همواره احتمال وقوع فاجعه را در ذهن داشته باشیم. کسی که با وسیله نقلیه شخصی مسافرت می کند، یا از پله ها پایین می یا از دوستی خداحافظی می کند نباید از احتمالات مرگبار غافل باشد. البته سنکا آرزو می کرد این وقایع غیر متقببه نهوحشتناک باشند و نه به شکلی غیر ضروری شرنگیز. هیچ چیزی نباید برای ما غیر منتظره باشد. افکار ما باید از قبل آماده رویارویی با همه مشکلات باشد و ما نباید به چیزهایی توجه کنیم که به وقوع آنها عادت داریم بلکه باید به آنچه میتواند رخ دهد نظر کنیم. چهار نابود شدن همگان بسیار آسان است. برای تعیید این مطلب فقط لازم است، مش دست خود را بگیریم و برای لحظهی زربان خونه در رگهای مایل به سبز و ظریف خود را مطالعه کنیم. انسان چیست؟ ظرفی که با کوچکترین تکان و آرامترین ضربه خواهد شکست. بدنی ضعیف و زریف، برهنه، در حالت طبیعی خود بیدفاع، متکی به کمک دیگری و در معرض تمامی اهانت‌های فرطونا. پنج لگدونوم یکی از مرفه ترین شهرهای رومی در گل بوده است. این شهر در تقاطع رودخانه های آرار و ران قرار داشت. و از موقعیت ممتازی به عنوان تقاطع راه های تجاری و نظامی بهرمند بود. این شهر حمامها و تاعترهای باشکوه و زراب خانه دولتی داشت. در اوت سال 64 میلادی جرقی از دست رها شد و به آتشی بدر گردید که در خیابان های باریک شهر گسترش یافت. با نزدیک شدن آتش شهروندان وحشت زده خود را از پنجره‌ها به زحمت بیرون کشیدند. شعله‌های آتش از خانه‌ای به خانه دیگر سرایت کرد و تا طلوع کامل خورشید بر فراز لوکدنون تمام شهر از حومه تا بازار از معبد تا همم ها خاکستر شد. نجات یافتگان شده بودند و تنها چیزی که برایشان باقی مانده بود لباس‌های دود گرفته‌ای بود که بر تن داشتند. بناهای باشکوه آنها چنان سوخته بود که قابل شناسایی نبود. آتشسوزی چنان سریع بود که رسیدن خبر فاجعه به روم بیشتر از مدت زمان سوختن شهر طول کشید. میگویی، فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد. آیا فکر میکنی چیزی وجود دارد که اتفاق نیفتد؟ وقتی میدانی که امکان دارد اتفاق بیفتد؟ وقتی میبینی که پیش از این اتفاق افتاده؟ شش. در پنجم فوریه سال 62 میلادی، فاجعه مشابهی ایالت کامپانیا را فرا گرفت. زمین لرزید و های بزرگی از پمپئی ویران شد. در ماه‌های بعد، بسیاری از شهروندان تصمیم گرفتند کامپانیا را ترک کنند و به دیگر قسمت‌های شبه جزیره ایتالیا بروند. جابجایی آنها را به این فکر انداخت که آنها عقیده دارند جایی روی زمین در لیگوریا یا کارابریا وجود دارد که ممکن است کاملا امن باشد، دور از دسترس اراده فورتونا. او به این عقیده با استدلالی پاسخ داد که به رغم مشکوک بودنش از نظر زمین شناختی قانع کننده است چه کسی به آنها وعده می‌دهد که میتوان بناهای بهتری بر این یا آن خاک برپا کرد همه مکان ها شرایط یکسانی دارند و اگر تاکنون زمین این نداشته‌اند همچنان ممکن است دچار زمین لرزه شوند شاید امشب یا قبل از امشب روزگار مکانی را که با اطمینان در آن ایستاده‌ای ایست از هم شکافت. از کجا میدانی که در آینده آوزا در محلهایی بهتر است که پیش از این فورتونا روی خود را علیه آنها به کار گرفته یا در محلهایی که هنوز چنین اتفاقی را به چشم ندیدند اگر فکر کنیم که قسمتی از جهان معاف و امن است، بر اشتباهیم. طبیعت هیچ چیز را به گونه‌ای نیافریده که ثابت و بی بماند. هفت در زمان به قدرت رسیدن کالیگولا، دور از دربار در خانوادهی در روم، مادری پسرش را از دست داد. متیلیوس هنوز 25 ساله نشده بود و جوانی با آیندهی درخشان بود. او به مادرش مارکیا نزدیک بود و مرگش مارکیا را از پا در آورد. او از زندگی اجتماعی کناره گرفت و در سوگ گوته ور شد. دوستانش با همدردی به او مینه گریستند و امیدوار بودند که روزی آرامش خود را تا حدی باز یابد اما چنین نشد یک سال گذشت بعد دو سال و سه سال و مارکیا هنوز بر اندوه خود غلبه نکرده بود پس از سه سال هنوز به اندازه همان روز تشییع جنازه عشق می ریخت سنکا نامه‌ای برای او فرستاد و به شدت ابراز همدردی کرد ولی با ملایمت چنین ادامه داد مسئله مورد بحث ما این است که آیا اندوه باید جرف باشد یا پایان نبذیر؟ مارکیا علیه چیزی تقیان می کرد که به نظر می رسید پیش آمدی در آن واحد سهمگین و نادر بود و نادر بودنش آن را سهمگین تر می کرد. اطراف او مادرانی وجود داشتند که هنوز پسران خود را از دست نداده بودند. مردان جوانی که کار خود را آغاز کرده بودند. یا در ارتش خدمت می کردند یا وارد سیاست می شدند چرا پسر مارکی را از او گرفته بودند؟ هشت این مرگ غیرعادی و هلناک بود ولی به عقیده سنکا نابهنجار نبود اگر مارکیا به خارج از حلقه اطرافیان خود نگاه می کرد، با فهرست متاسفانه بلندی از پسرانی روبرو می شد که به دست فورتونا به قتل رسیده بودند اکتاویا، لیویا، کورنلیا سنفون، سینفون، پاولوس، لوکیوس، بیبولوس، لوسیوس لوسیوسولا، آگوستوس و اسکیپیو همه پسران خود را از دست داده بودند. مارکیا با روی گرداندن از این مرگ به شکلی قابل فهم ولی خطرناک آنها را در درک خود از امر به هنجار جایی نمیداد. ما هرگز پیش از فرار سیدن بلایا منتظر آنها نیستیم. چه بسیار تشیی هایی که از جلوی خانه های ما میگذرند، ولی ما هرگز به مرگ نمیاندیشیم. چه بسیار مرگهایی که ناگهنگام هستند ولی ما برای کودکان خود نخشه هایی در سر می‌پرورانیم. اینکه چگونه ردای توگا برتن خواهند کرد، در ارتش خدمت خواهند کرد و وارث املاک و اموال پدران خود خواهند شد. ممکن است کودکان زنده بمانند ولی چقدر ساده دلانه است که عقیده داشته باشیم رسیدن آنها به بلوغ حتی رسیدن آنها به شام امشب امری قطعی است. هرگز برای امشب به شما وعده ای ندادند. نه مهلت بسیار زیادی دادم حتی برای این ساعت هیچ وعده ای ندادهاند. اینکه انتظار آیندهای داشته باشیم که بر اساس احتمال شکل بگیرد نوعی صادلی خطرناک است. هرگونه گونه که انسانی در معرض آن قرار داشته هرچند نادر؟ هرچند در گذشته بسیار دور؟ به هر حال احتمالی است که باید خود را برای آن آماده کنیم. نو چون دوره‌های طولانی خیرخواهی فرتونا این خطر را به همراه دارد که فریب بخوریم و غافل شویم، سنکا از ما خواست هر روز زمان اندکی را به تفکر درباره فورتونا اختصاص دهیم. ما نمیدانیم در آینده چه اتفاقی را خواهد داد. ما باید منتظر چیزی باشیم. اول صبح باید کاری را که سنکا پیش اندیشی مینامید انجام دهیم و درباره تمام مصائب ذهنی و جسمی فکر کنیم که ممکن است این الهه بعداً ما را به آنها مبتلا کند. یک پیش اندیشی سنکایی فرد حکیم هر روز را با تفکر آغاز خواهد کرد. فرتونا هیچ چیزی به ما نمیدهد که واقعا بتوانیم مالک آن باشیم. هیچ چیز، خواه عمومی یا خصوصی ثابت نیست. سرنوشت انسانها به اندازه سرنوشت شهرها به سرعت در تغییر است. هر بنایی که در سالیان دراز به بهای زحمت زیاد و به لطف عظیم خدایان برافراشته شده، در یک روز از میان میرود و از هم می باشد. نه، هر کسی بگوید یک روز، مصیبت برغاسا را بیش از حد به تعویق انداخته. یک ساعت، یک لحظه برای سرنگونی امپراتوری ها کافی است. هر چند وقتی یک بار شهرهایی در آسیا با تکان زمین لرزه ای نابود شدند. چند شهر در سوریه در مقدونیه به کلی از میان رفته است. هر چند وقتی یک بار این نویرانی قبرس را به مخروب بدل کرده است. ما در میان چیزهایی به سر میبریم که همه گی محتوم به مرک هستند. فانی زاده شده ای و فانی زاده ای. همه چیز را به حساب آور. انتظار همه چیز را داشته باش. شبیه این مطلب را می توان به شیوه های دیگری بیان کرد. به زبان فلسفی دقیقتر میتوان گفت که عمل فائل فقط یکی از عوامل الی است که رویدادهای زندگی آن فرد را تعیین می کند. سنکا به مبالغه مداوم متوسط شد. هرگاه کسی کنار شما یا پشت سر شما بر خاک میافتد فریاد بزنید فرتونا تو مرا نخواهی فریفت. تو مرا در حال اطمینان و قفلت بر خاک نخواهی انداخت. میدانم در چه فکری هستی. درست است که تو فرد دیگری را به خاک افکندی، ولی مرا هدف گرفته بودی. یازده اگر بیشتر فلاسفه احساس نمی کنند که لازم است این گونه بنویسند، به این دلیل است که عقیده دارند تا وقتی استدلالی منطقی است، سبک بیان استدلال به خواننده تأثیر آن را تعیین نخواهد کرد. سنکا به تصویر متفاوتی از ذهن اعتقاد داشت. استدلالها شبیه مارماهی هستند. هر هم منطقی باشند، ممکن است از چنگ ذهنی ضعیف بگریزند مگر اینکه به کمک سوار خیال و سبک در ذهن ما ثابت شوند ما به استعاره ها نیاز داریم تا چیزی را درک کنیم که قابل دیدن یا لمس کردن نیست در غیر این صورت آن چیز را فراموش خواهیم کرد الهی فورتونا به رغم ریشه های دینی غیر تصویر کاملی بود از اینکه همواره متوجه باشیم که در معرض حادثه هستیم به کمک این تصویر مجموعه از تهدیداتی که امنیت ما را به خطر میاندازند به شکل دشمن آدمنمای ترسناکی درآمند بوم احساس بیداالی احساس اینکه قوائد عدالت نقص شدهاند قودی که حک میکنند اگر شریف باشیم پاداش خواهیم گرفت و اگر شرور باشیم مجازات خواهیم شد درکی از ادالت که در تربیت ابتدایی کودکان به آن حیلغا می شود و در اکثر متون دینی به چشم میخورد. برای مثال در کتاب صفر تصنیه آمده است که انسان پرهیزگار شبیه درختی است که کنار رودخانه غرز شده و هر کاری انجام دهد شکوفا می‌شود. بدکاران چنین نیستند. شبیه کاهی هستند که باد آنها را خواهد برد. نتیجه خیر پاداش است و نتیجه شر مجازات. وقتی فردی کار درستی انجام می دهد ولی باز هم به بلا مبتلا می شود متحیر می میگردد و قادر نیست این رویداد را با طرح الگوی عدالت سازگار کند. جهان پوچ به نظر می رسد انسان میان دو احساس در نوسان است یکی اینکه ممکن است کسی به رقم انجام دادن کارهای خوب بد بوده باشد و به همین دلیل است که مجازات می شود و دیگر اینکه او واقعا بد نبوده و بنابراین قربانی نارسایی مصیبتبار بار دستگاه ادالت شده است. در تمام شکایت هایی که از بیداالی صورت میگیرد این اعتقاد پایدار به طور تلویحی وجود دارد که جهان اساساً عادلانه است. یک. عدالت ایدئولوژی نبود که به مارکیا کمک کرده باشد دو. این ایدولوژی مارکیا را مجبور کرده بود میان دو احساس در نوسان باشد. احساسی ناتوان کننده مبنی بر اینکه چون خودش بد بوده پسرش متیلیوس را از او گرفتند و در بقیه اوقات احساس عصبانیت شدید از دنیایی که متیلیوس در آن مرده بود با انایت به اینکه خودش همواره ذاتا خوب بوده است. 3. بلی ما همیشه نمیتوانیم سرنوشت خود را با رجوب ارزش اخلاقی خود تبعین کنیم. ممکن است محوب به نعمتی؟ یا مبتلا به بلای شویم بیان که پشت هیچ کدام از آنها ادالتی وجود داشته باشد. همه اتفاقهایی که برای ما میافتد، پیرو چیزی درباره ما رخ نمی دهد. علت مرگ متیلیوس بدی مارکیان نبود و چون مادرش خوب بود و با وجود این او مرده بود جهان ناعادلانه نبود. مرگ او به تصور سنکا کار فورتونا بود و این الهه قاضی اخلاق نبود. او قربانیانش را مثل خدای صفر تصنیه ارزشیابی نمیکرد تا مطابق استعقاق به آنها پاداش دهد. او بدون بسیرت اخلاقی تون باد بلا را نازل میکرد. چهار سنکا در خود با انگیزه تضعیف کننده تفسیر شکستها بر اساس الگوی نادرست ادالت آشنا بود. با آغاز پادشاهی کلودیوس در اوایل سال 41 میلادی، سنکا آلت دست نقشه ملک مسالینا برای خلاص شدن از شر خواهر کالیگولا، یولیا لیویلا شد. مسالینا یولیا را به داشتن رابطه نامشروع متهم کرد و به دروغ سنکا را عاشق او نامید سنکا بیدرنگ خانواده، پول، دوستان، شهرت و شغل سیاسی خود را از دست داد و به جزیره کارسیکا یکی از دور افتاده ترین بخشهای امپراتوری پهناور روم تبعید شد. او باید دوره های متناوبی از احساس تلخکامی و مقصر پنداری را تجربه کرده باشد. او باید خود را به خاطر سوء تعبیر موقعیت سیاسی مثالینا سرزنش کرده و از چگونگی ابراز قدردانی کلودیوس از وفاداری و استعدادهایش متنفر شده باشد. هم احساس تلخکامی و هم مقصر پنداری مبتنی بر تصویری از جهانی اخلاقی بودند که در آن شرایط بیرونی منعکس کننده خسایص درونی بود. به یاد آوردن سبب خلاصی او از این الگوی تنبیهی شد اجازه نمی دهم برای من حکم صادر کند شکست سیاسی سنکاران نباید کیفر گناهانش است. این شکست مجازاتی اقلانی نبود که خدایی بسیر پس از بررسی شواهد و مدارک در دادگاهی الهی مقرر کرده باشد بلکه نتیجه فرعی ظالمانه ولی از نظر اخلاقی بیمعنی دسیسه های ملکه یکیل بود. سنکا فقط از بدنامی فاصله نمی گرفت. دستگاه سلطنتی که او یکی از مقاماتش بود به هیچ وجه برای او مایه خوشنامی و کسبه وچه نبود. مداخله های فرتونا خواه رحمانی یا شیطانی انصار بخت و تصادف را به سرنوشت انسان ها داخل کرد. Thank you.